در به همه افراد موفق میگویند که بسیار منظم هستند و مدیریت خوبی دارند. خوشبختانه مهارت‌های مدیریت زمان با تمرین و تکرار قابل یادگیری هستند. شما می توانید با بکار بستن مفاهیمی که در آستانه یادگیریشان هستید، یکی از پربارترین افراد در رشته خودتان بشوید. برایان در این زمینه صاحب نظر است. او بدون دیپلم از دبیرستان شروع کرد و با کارش خودش رو بالا کشید تا مدیر اجرایی یک شرکت 265 میلیون دلاری شد. تریسی بیش از 20 سال به مطالعه مدیریت زمان پرداخت. او در این زمینه‌ها دهها کتاب خواند و در های بیشماری شرکت کرد. از برنامه‌ریزی‌های زمانی استفاده کرد و به برنامه‌های آموزشی صوتی گوش داد. او در نهایت سیستم مدیریت زمان خودش را سازمان داده و آن را به هزاران نفر در سراسر دنیا آموزش داد آنچه می بیست و 21 از بزرگترین ایده ها در شخصی کارایی شخصی که کتاب حال کشف شده است این ایده‌ها می‌توانند زندگی شما را متحول کنند و حالا برایان تریسی